بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح كتاب بعد فرائز كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا ومتعلقات عنه أنت كي مربوط به نكاح هست النكاح مستحب لمن يحتاج اليه. می‌فرماید نکاح مستحب است برای شخصی که نیاز به نکاح دارد. پس نکاح مستحب برای کسی که دلش نکاح میخواهد ویجوز للحر این یجمعه بین اربعی حرائره خب بعد از این که حکم نکاح برای اونی که نیازمنده گفت مستحبه بیان میکنه جلوتر که برای آزاده جائز است چهار زن چهار زن آزاده پس و جائز است برای آزاده شخص آزاد که جمع کند بین چار زن، این چار زن همزمان داشته باشه و للعبد بین اثنتین و برای عبد که جمع کند بین دوتا یعنی بیش از دوتا همزمان نمیتونه عبد زن بگیره ولا لا الحر امتن الا بشرطين و آزاده نمیتونه نکاح بشه با کنیز با امت الا بشرتین مگر با شرط البته جمله خبری هست ولی به معنی انشاء لا ینکی حل رو در اسم معنیش چینجوری نکاح نمیشود ولی به معنی انشاء یعنی جایز نیست که نکاح بشه یعنی نکاح نشود حر با کنیز مگر با دو شرط یک عدم و صداق الحره مهریه آزاده رو نداشته باشه توان مالی ازدواج با آزاده رو نداشته باشه دو و خوف و لعنتی اون شرط تنایی کافی نیست ترس زنا داشته باشه این ترس رو داشته باشد که اگر با کنیز ازدواج نکند مبتلای به زنا میشه در این حالت جائزه است که با کنیز ازدواج کند پس یک مهریه زن ازدواج با زن آزاد رو داشته باشه دو ترسر بر واقع شدن برzina رو داشته باشه خب و نظر رجلی الى المراه على سبعه اضرب نگاه کردن مرد به زن بر هفت نوع ها نگاه متفاوته احدها اشخاصی که نگاه میکنه متفاوته بر هفت نوع پس نگاه کردن شخص بزن بر هفت نوعه احادوها نوع اول نظره الى اجنبيه لغیر حاجتن فغير جائزه نگاه کردن شخص نگاه کردن مرد به زن اجنبی بدون نیاز فغیرو جائز این نوع نگاه جائز نیست دو والثاني دو نظره الى زوجته او امته فيجوز ان ينظر إلى ما عدا الفرج منهما نگاه كردن مرد به زنش و به کنیزش است که نگاه کند زنش را و کنیزش را همه چیزش را جز شرمگاه آن جز فرج را، شرمگاه را البته شارحین میگن که این نظریه نظریه است. نظریه صحیح مذهب این است که نگاه کردن به شرمگاه زنش و کنیزش جائز است پس نوع نگاه دوم ما خوندیم و الثالث نظره الى ذوات محارمه او امته المزوجتي فيجوز فيما عدا ما بين السرتي والركبه نگاه سوم نگاه مرد به محارمش به محرمهایش به زنانی که محرمش هستند او امته المزوجه یا بکنيزش که در ازدواج شخص دیگری است فیاجوس نظرش جائز است به این دو کس به این دو گروه فی ما عدا ما بین و رقبه در بغیر از ناف در بغیر از ما بین ناف و زانو اه؟ ما بین زانو ناف و ناف و زانو جائز نیست دیگه بقیه اعضا سر رو نگاه کردن دست ها رو نگاه کردن پاها رو نگاه کردن خلاصه بقر از این جایی که گفت بقیه جایز است البته به شرط این که از فتنه در امان باشه و بدون شهوت باشه نگاهش و رابع چهارم انا و رولی اجل چهارمین نوع نگاه نگاه کردن به خاطر نکاح به این زنی ازدواج کنه. ها؟ یک زنی رو به این نیت نگاه بکنه که آی زنی خوبیه یا نه، که میخواد ازدواج کنه. فیجوز الی الوجه والكفين. این جایز است به صورت و دو کف دست. بله، اینجوری می‌گه. پس جایز به صورت و اون زن نگاه کردن و به دو کف دستش. بالي بنية إصداره والخامس نوع النظر للمداوات فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها بنجم النه النجاح نجاح جهة مداوست تعرف طبيب هست دكتور هست ميتواند تواند نجاح بكناد فيجوز بس جائزة نجاح كردن إلى المواضع التي يحتاج إليها به اون جایگاه ها و نقطه از بدن که نیاز به مداوا دارند، جهت مداوان نگاه کردن شو نیاز است. و سادسو ششمین گروه الناور للشهادت او للمعاملت. ششمین نوع نگاه کردن نگاه کردن جهت گواهی دادن و یک جای می برای علیه یک زنی یا به نفش فرقی نمی کنه گواهی بدید نیاز هست که اون زن رو ببینید اینجا هم جایزه اول المعامله یا برای معامله وای زنی معامله میزنید فیجوز النظر الى الوجه خاصه اینجا جایز است نگاه کردن به صورت فقط مثل مثلا زن میره بانک خود خب بخاطر اینکه صاحب بانک بدون این کارت مال خودشه یا نه میگه صورت تو ظاهر کن این جایزه و السابع النظر الى الامه عند ابتياعها هفتمین نوع نگاه و نز... نگاه کردن مرد به زن نگاه کردن به کنیز هنگام خریدنش خب میخواد اونو بخره اینجا جایزه که نگاهش کنه فیجوز إلى المواضيع التي يحتاج إلى تقليبها بس جائزة بأون جايگاهایی نياز نیاز هست به اون به نظر ها اینجا هم البته چه چیزاشو نگاه میکنه دست پا مو عورت رانا خوب ببینم ساتون فصل ما يشطرطو لصيحة النكاحي. أنتك الشرط هست براي صحيح بودان النكاح. براي إن كالنكاح صحيح بشه تشيزي شرط هست. ولا يصيح أغد النكاحي إلا بوليين وشاهدي عادل. إن دو تشرت براي صحيح بودانش. ميجي صحيح نيست عقد النكاح مگر بولي. و دو تا شاهد و گواه عادل یعنی اونجا که اغدو میبندن ولی باید باشد و دو تا گواه عادل و یفتقر الولی و شاهدان الى ستت شرائد ولی و دو تا شاهد نیازمند به شیش شرط هستند باید چی شرط داشته باشند آ برای صحت عقد، ولی دو تا شاهد شرته ولی این ولی شرایطتی رو باید داشته باشه تا نیازه به اون باشه این دو تا شاهد شرایطی باید داشته باشن تا شهادتشون قبول باشه به عنوان شاده حساب بشن چه هستن؟ یک الاسلام یک مسلمان بودن دو والبللوغ بالغ بودن سه والاقل عاقل بودن چار والحریت آزاد بودن پنج والذکورت مرد بودن شش والعدالت عادل بودن پس ولی و شاهد این ششت شرطو داشته باشن تا بشه ولی اون زن شد و یا شاهد برای عقد خوب. إلا أنه لا يفتقر نكاح الزمية إلى اسلام الولي ولكن إن مسألة رو يك استدراك رو ميقره يك مسألة رو تواهمي شعر بيش بياد توضيحش ميده جوزان كه نكاح زن زمي زن غير مسلمان غير مسلماني در حكومة إسلام زندگي ميقنه وليش نيازة بإسلام نادر نيازة نيس كي وليش مسلمان باش تقول خودش مسلمان نيس بس إلا أنه لا يفتقر نكاح الزميتي إلى إسلام الولي ميقى جوزان كي نياز مند نيس نكاح زن زمي بمسلمان بودن وليش ولا نكاح الأمتي إلى عدالة السيد وهمتوني نكاح كنيس نیازی به عدالت اون صاحبش اون سیدش اون مالکش ندارد خب حالا که بحث ولی رو مطرح کرد ولی کی میتونه ولی باشه این ولی اولویت داره و اول الولاتی اولاترین ولی ها ابتدا که هست؟ العب. ابتدا پدره ابتدا پدر ولی هست اگر نبود ثم الجد ابو الاب سپس پدر بزرگ پدری پدر پدرها ثم الاخو للابی والام سپس اگر نبود برادر پدر و مادری برادر شقیقه اون زن ثم الاخو للاب سپس برادر پدریش ولی هست ثم ابن الاخ للعب والعوم سپس پسر برادر شقیق برادر شقیق وجود نداره برادر پدری وجود نداره حالا پسر برادر شقیق ولی میشه ثم ابن الاخی للعب سپس پسر برادر پدری سپس پسر برادر پدری و دختر برادری داره پدری که برادر خودش نیست ولی پسر داره پسرش ثم العام بعدش امو ولی هست ثم ابنه سپس پسر امو على هاده ترتیب تبقی این ترتیب پس اولویت بندیه ولی ها در مذهب تبقی همین ترتیب بود پدر بزرگ پدری برادر پدر و مادری برادر پدری سپس پسر برادر پدر و مادری سپس برادر پدری پسر برادر پدری سپس امو سپس پسر امو فی اذا عدمت العصابات زمانی که این احسابه ها نبودند که ولی باشند فالمعل المعتق سپس مولاي موثق آزاد كننده آزاد كننده وله هسن ثم عصباته سبس أسبهايش وله هسن ثم الحاكم سبس حاكم ولا يجوز أن يصرح بخطبة مؤتدة بعد مسألة دي كيكي درين باب وجود دارد این است که میگه جایز نیست که سراحتا سراحت بکند آشکار بکند خاصگاری زنی رو که در اده هست زن در اده هست جایز نیست سراحتا ازش خاصگاری بکنه بهش بگه که من بخواهم با شما ازدواج کنم و یجوز این یعرضا لها و جایز است که با کنایه یعر رضا لها با کنایه به بفهمونه صراحتن نمیتونه ازش خواستگاری کنه کنایتن میتونه خواستگاری کنه و یا جوزو این یعر ها در عده زن کنایتن بش بگه غم نخور انشاءالله شوار خوبی گیرت میاد یا مثلا به قول استاد ما میگفت به به به چه دست پخت خوبی داری الله که این دست پخت مال ما خواهد شد مثلا از این مسائل خلاصه میگه و ینکیحا یعنی بعد این قضاء ها و بعد از تمام شدن اده اد اونو به نکاح خودش در میاره پس در موقع اده اد کنایتن میتونه اش بگه ولی بعد از نکاحش بعد از انتهای عدده است این موقع عدادگی نمیشه یه زنی رو استاج کرد و ننس البار بینی زنان هم بر دو گروهند و زنی که شوهر داشته از قبل کتاب من نوشته در پاورقی اون زنی که به از بین رفته حالا چی از راه حلال چی از راه حرام؟ خب خلاصه ز... یک زن سیب دو زن باکره زن باکر اونی هست که به کارتش از بین نرفته دیگه طبقه این تعریف فل بکرو یجوزو لیل ابی والجدی اجباروها الان نکاحی میگید در رابطه با دختر باکره برای پدر و پدر بزرگ جایز است اجبار کردنش بر نکاح شکل اجباری اونو نکاح بکنند جائز است و سیب لا یجوز تزويجها الا بعد بلوغها و اذنها اما صیب جایز نیست ازدواج دادنش مگر بعد بلوغش یک دو و اذنها و با اجازهش اما بکر دیگه طبقه مذهب جایز است برای پدر و پدر بزرگ اجبار کردنش بر ازدواج بر نکاح طبقه مذهب موفق و پیروز باشید